اولین کلید سلامتی تنفظ اولین گام برای تندرستی تنفس سالم است اگر تنفستان تان را اصلاح کنید سلامتیتان اصلاح می شود لابد از این حرف من تعجب می کنید این کار بسیار ساده است تنها در صورتی می توانید سالم بمانید که سلول های بدن شما سالم باشند. اما چه چیزی باعث می شود سلول های بدنتان سالم باشند؟ سلول های بدن شما نیازمند مواد غذایی و اکسیجنند. جریان خون این مواد را به سلول ها میرساند. پس آنچه باعث می شود سلول های شما رشد کنند و به حیات خود ادامه دهند، همین جریان صحیح خون است. اما اگر این جریان آلوده باشد و یا نظم آن هم بخورد، سلول ها به موقع تغذیه نمیشوند و به طبع آن انرژی شمانیز کاهش می آبد. تنفس تنفوز مانند دکمه ی تنظیم کننده ی سرعت جریان خون است با میتواند کل دستگاه گردش خون شما را تحت تاثیر قرار دهد. جریان خون در حقیقت همان جریان زندگی است. خون به سلول‌ها اکسیژن می‌رساند و با های سفیدی که در خود دارد از بدن شما در برابر بیماری‌ها حفاظت می‌کند. علاوه بر آن خون وظیفه غذارسانی به سیستم لنف شما را نیز به عهده دارد. اما لنف چیست؟ بعضی‌ها باورند که لنف هیچ نقشی در سلامتی بدن ندارد. اما در حقیقت لنف ماده‌ای است که اطراف هر سلول را پوشانده است. خونی که در داخل قلب به سمت سرخ ها و مویرک ها پمپاش دارای اکسیژن و مواد غذایی است. مویرک های کوچک این مواد را در اختیار سلول ها قرار می دهند. هر کدام از سلول ها مانند یک موجود زنده، زایعات و سموم خود را دفع می کنند. این مواد سمی به قده های لنفاوی منتقل می شود و از طریق آنها دفع می شود. بنابراین سلول‌ها برای سالم بودن به گردش لنف نیاز دارند چون این تنها راهی است که می‌تواند سلول‌های مرده، پروتئین‌های خون و مواد سمی دیگر را از محیط سلول‌ها پاک نماید. اگر این سیستم لنفاوی تنها برای مدت 24 ساعت به خوبی عمل نکند، در اثر تجمع این سموم شما خواهید مرد. سیستم گردش خون انسان توسط قلب کار میکند اما سیستم لنفاوی برای حرکت هیچ وسیله در اختیار ندارد تنها راه جریان یافتن لف و تصویه آن تنفس و تحرک است بنابراین این اگر میخواهید جریان خونتان سالم و عاری از هر گونه سم باشد باید تنفستان را عمیق کنید و ورزش کنید مؤثرترین و بهترین راه برای به حرکت در آوردن لنف تنفس امیق دیافراگمی است. این شکل از تنفس در قفصه سینه خلا ایجاد می کند. این خلا لنف را می مکد و بر جریان تنفس لنف می افزاید. در حقیقت این تنفس دیافراگمی به همراه ورزش سرعت طبیعی فرایند دفع سموم بدنتان را تا پانزده برابر بیشتر می‌کند تأثیر این عامل تا جایی است که به عقیده خیلی‌ها هیچ عاملی به اندازه یک تنفس صحیح بر سلامت بدن تأثیر ندارد تنفس صحیح علاوه بر دفع سموم بدن اکسیژن را به خوبی به تمام سلول‌های بدن می‌رساند در تحقیقی که توسط محققان انجام شد، مشخص شد که کمبود اکسیژن باعث تبدیل سلول های بدن به تومورهای های بدخیم می شود و نقش مهمی در پدید آمدن سرطان ایفا می کند. بنابراین، رساندن اکسیژن به سلول های بدن مهمترین و ضروریترین گام برای تضمین سلامتی است و تنها راه برای این کار تنفس عمیق است. اما متاسفانه اکثر مردم شیوه صحیح تنفس را نمی دانند. آمارها این حرف را به خوبی اثبات می کند. آیا می‌دانید که از هر سه آمریکایی یک نفر سرطان دارد؟ این حرف شاید ترسناک به نظر برسد. اینطور نیست؟ اما جالب اینجاست که این نسبت در ورزشکاران بسیار متفاوت است. از هفت ورزشکار آمریکایی تنها یک نفر به سرطان مبتلا است. مطالعات نشان داده که در ورزشکاران به دلیل جریان صحیح و مناسب لنف دستگاه ایمنی بسیار فعالتر و قوی است. به عبارت دیگر، تنفس امیغ در ورزشکاران باعث ایجاد جریان مناسب لنف و تصویه محیط بدن از سموم می شود و علاوه بر آن اکسیژن بیشتری به سلول ها می رسد. روش صحیح تنفس تا کنون دانستید که بهترین و موثرترین روش برای سلامتی تنفس مناسب است. اما سوال اینجاست که شیوه درست تنفس چگونه است؟ توصیه من به شما این است که از این پس اینگونه نفس بکشید. با یک شماره هوا را به داخل ششهای خود بفرستید و به اندازه چهار شماره آن را همانجا نگه دارید. سپس با دو شماره بازدمتان را بیرون دهید. منظور من از این شماره مدت زمانهای مشخص مثلا سه ثانی است. اگر شما به مدت سه ثانیه هوا را به داخل ششهای خود فرو ببرید باید به اندازه دوازده ثانیه آن را در داخل قفسه سینهتان حبس کنید و به مدت شش ثانی بازدم خود را بیرون دهید. اما چرا مدت زمان بازدم باید دو برابر دم باشد؟ دلیلش این هست که وقتی شما هوا را از ششها خارج می کنید، تمام سموم موجود در لنف ها از محیط سلول خارج می شود. اما چرا باید هوا را چهار برابر بیشتر در شش ها نگه داشت؟ با این کار می توانید به اندازه کافی خون اکسیژندار را در محیط سلول ها نگه دارید تا بتوانند اکسیژن را از خون جذب کنند. علاوه بر این لمف خود را وادار به گردش می کنید. همواره به یاد داشته باشید که در زمان تنفس دم را عمیق و توسط ازولات شکمی انجام دهید. با این روش قفسه سینهتان را درگیر می کنید و باعث می شوید لمف را به سمت بالا به جریان بیاده زد. نکته جالبی که در این شیوه تنفس وجود دارد این هست که پس از انجام آن خود به خود میزان غذا خوردن شما هم تا حدی کم می شود. اما دلیل چیست؟ به خاطر این است که در حین تنفس میق سلول های شما مواد غذایی مورد نیاز خود را جذب می کنند. بلا بر این هر روز حداقل سه بار باید به شیوه که برایتان توضیح دادم نفس بکشید حالا با هم تمری می کنیم. لطفاً بیستید. ازولات را کاملاً شل کنید. همزمان با منقبض کردن ازولات شکم دمی امیق را از بینی انجام دهید. در موقع انجام دم تا هفت بشمارید. یک دو سه چهار پنج شش هفت حالا چهار برابر بیشتر یعنی بیست و هشت ثانیه هوا را در داخل ششهای خود نگه دارید. سپس هوا را به آهستگی به مدت چهارده ثانیه از دهانتان خارج کنید. البته اگر احساس می زمان فرو بردن دم و نگهداری هوا در ششهایتان زیاد است، می آن را کم کنید. اگر این تمرین را هر روز انجام دهید، طولی نمیکشد که احساس خواهید کرد ظرفیت شوشهایتان چند برابر شده و به طبع آن انرژی بدنتان نیز چند برابر می شود. مطمئن باشید هیچ غذایی در جهان وجود ندارد که به تواند مانند یک تنفس صحیح به شما کمک کند.